به نام خدا سلام روز بخیر من از واحد تولید محتوی شرکت فناوری نومان هستم این پادکست ها برای کسایی ساخته میشه که نمیرسم مقاله های ما رو مطالعه کنند پادکست ها رایگان هستند و ما در نومان این اطمینان رو به شما میدیم که تا آخر رایگان خواهد ماند از شما میخوام اگه براتون مفید واقع به کسایی که احساس میکنید میتونه مفید باشه معرفی و شیر کنید ما در این مقاله با هم بررسی خواهیم کرد که PBX چیست، IP PBX چیست و چه تفاوت‌هایی دارند. PBX مخفف Private Branch Exchange که در معنی به یک شبکه تلفن خصوصی مورد استفاده در شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود. کاربران سیستم تلفنی PBX می‌توانند با استفاده از کانال‌های مختلف ارتباطی مانند ASTN، Voice over IP یا همون وی یا خطوط آنالوگ در داخل شرکت خود و با دنیای خارج ارتباط برقرار کنند. PBX چیست؟ به زبان ساده PBX ها این امکان را به شما می‌دهند تا خطود بیشتری از خط تلفن‌های فیزیکیتون رو در داخل مجموعه تون داشته باشید و تماس رایگان بین کاربران برقرار کنید. علاوه بر این، به تناسب نوع پی‌پی‌ایکس انتخابی، ویژگی‌هایی مانند انتقال تماس، پست صوتی، ثبت تماس، منوی صدای تعاملی و صف تماس را با کیفیت و درجه متفاوت خواهید داشت. پی‌پی‌ایکس چیست و بر چند نوع است؟ پی‌پی‌ایکس آنالوگ سخت‌افزاری. معروف‌ترین مثال برای این نوع پی‌پی‌ایکس‌ها، سانترال‌های پاناسونیک موجود در بازار است. این نوع پی‌پی‌ایکس‌ها از امکانات محدود نسبت به سایر پپیکس هایی که در ادامه ذکر خواهیم کرد برخوردار هستند پپیکس های سنتی تلفن های مختص خود را دارند و امکان استفاده مجدد از این تلفن ها با سیستم های مختلف وجود ندارد و این به این معنی است که ما وارد یک سیستم لاکین شده‌ایم به این معنی که ما متعهد به حفظ همان سیستم هستیم زیرا تغییر سیستم به معنی تغییر تلفن ها خواهد بود و این موضوعی است که باعث گرانی بیش از حد تغییر خواهد شد بنابراین به ناچار تن به حفظ سیستم موجود با وجود کاستی ها خواهیم داد. در اشل‌های کوچک سازمانی این سیستم به ظاهر مقروم به صرفه است. در نظر داشته باشید در دنیای امروزی با این حجم از تکنولوژی که با کسب و کار عجین شده است، استفاده از چنین سیستمی توصیه نمی نمی‌شود. های تحت شبکه نرم‌افزار یا همان سافت‌ور آی‌پی زمان و تکنولوژی چشمانداز تلفن‌های ثابت همراه و سازمانی را تغییر داده است. و اکنون پرچمدار سیستم های تلفونی نرمافزاری است که با استفاده از استاندارد جهانی SIP عمل می کنند. های هیبریدی این نوع پکس ها دقیقا همان پBکس نسل قبل هستند با این تفاوت که امکان اتصال به درگاه شبکه نیز به آن افزوده شده است. این پبکس نسبت به نسل قبل از امکانات بهتری برخوردار است اما به همان دلایل قبلی و با توجه به رشد سریع تکنولوژی و امکاناتی که پبکس نسل سوم و چهارم ارائه می کنند نتوانست خواهان زیادی برای خود کسب کند. پاناسونیک سری HT S32 به همراه مزایا و معایب آن که قبلا مورد بررسی قرار دادیم در این سری از پیپکس ها قرار می‌گیرند. در این نوع پیپکس با محدودیت‌های نظیر امکانات مرکز تماس، توسعه و سطح پایین کیفیت خدمات ارائه شده در بخش‌های ضبط مکالمات، آهنگ انتظار و پاسخگویی اتوماتیک نسبت به نسل بعدی پیپکس ها خواهیم بود. PBX های تحت شبکه سخت یا همان هاردوی آی پی این نوع PBX ها جزء سیستم های تلفنی بروز به حساب می و امکانات و قابلیت های نسل جدید را در خود جای داده اند اما کماکان در این سیستم ها مشکلات مرتبط با محدودیت های سخت در جای خود باقی مانده است با سیستم PABX سخت افزاری شما به طور معمول محدود به حداکثر تعداد مشخصی از خطوط تلفن خارجی و حداکثر تعداد مشخصی از دستگاه‌های تلفن داخلی هستید. کاربران سیستم تلفنی PABX و IP PABX می خطوط خود را برای برقراری تماس تلفنی خارج از شبکه به اشتراک بگذارند. PABX های تحت شبکه نرم افسار یا همان سافت ویر IP PABX زمان و تکنولوژی چشمانداز تلفن‌های های ثابت، همراه و سازمانی را تغییر داده است. و اکنون پرچمدار سیستم تلفنی به بکس های است که با استفاده از استاندارد جهانی SIP عمل می کنند. این نوع سیستم تلفنی کامل ترین و بروست ترین سیستم ارتباطی را شامل می شود. اگر می خواهید اطلاعات تکمیلی و کامل تری را در این زمینه کسب کنید، قبلا مقاله ای تحت عنوان مقایسه وایپ و سانترال سخت افزاری و نرم افزاری به نگارش در آمده است که پس از مطالعه این مقاله می درک کاملی از انواع سیستم های تلفنی، مزایا و معایب آن داشته باشید. سیستم‌های تلفن پی به عنوان راه حل جدید به دو صورت مختلف در دسترس هستند یک کلیه تجهیزات سخت افزاری در شرکت شما قرار گیرند و سرویس دهنده تلفنی مجموعی خودتان باشید دو کلیه تجهیزات سخت افزاری در شرکت ارایه‌کننده خدمات تلفنی قرار می‌گیرد و شما مبلغی به عنوان اجاره ماهانه سالیانه پرداخت نمایید نتیجه گیری اگر بخواهیم در چند جمله و در یک مقایسه کوتاه تفاوت این سیستم ها را نشان دهیم به مقایسه ای که خواهیم گفت توجه کنید PbX سیستم سیمکشی مجزذا می خواهد ولی IP پbکس استفاده از کابل شبکه برایش میکفی است پbکس ها هزینه اجرایی زیادی دارند اما IP پbکس ها هزینه اجرایی کم کمی خواهند داشت پbکس ها نصف و آهندازی دشواری دارند اما IP پbx ها و راههندازی آسانی را برخوردار هستند پbکس، داره مدیریت پیچیده است اما آی پی پی بی را دارد. پی ها امکانات محدودی دارند اما آی پی ها امکانات زیاد با پیشرفت روز به روز را خواهند داشت. پی ها سنتی و در حال انقضا هستند اما آی پی ها چشمنداز پیشرفت در آینده خواهند شد. PbX نیاز به زیر ساخت کاملا مجزا دارد، اما IP PbX ها استفاده از زیر ساخت موجود شبکه برایش کافی است. تغییر سیستم سنتی به IP PbX مزایا و امکانات بسیاری را فراهم می کند که امکان رشد نامحدود داخلی و امکانات بینظیر و بروز را ارائه می دهد. در صورتی که قصد خرید سیستم تلفنی را دارید پیشنهاد می‌کنیم سری به پادکست‌های مرتبط با معرفی امکانات بروز سیستم‌های ارتباطی بزنید و سپس سری به مقایسه نسخه‌های مختلف راهکار ارتباطی تریسیکس را داشته باشید.